آگاهی راه رهایی از درد و رنج در لحظه حال رنجی وجود ندارد به طور کل زندگی هیچ کس رها از درد و رنج نیست. آیا مسئله آن نیست که باید با درد و رنج های خود کنار بیاییم نه اینکه از آنها اجتناب کنیم؟ بخش امده درد و رنج های آدم ها بیهود است. تا زمانی که زه اداره امور زندگی تو را به گرفته است این درد و رنج ها هم هستند. در درد که تو در لحظه ی حال می‌کشی، شکلی از عدم پذیرش توست. صورتی از مقاومت ناآگاهانه در برابر آن چیزی که هست. در سطح فکر، مقاومت صورتی از قضاوت است. در سطح عواطف و احساسات، مقاومت صورتی از منفی است. شدت درد و تو به میزان مقاومت تو در برابر لحظه اکنون بستگی دارد میزان مقاومت تو نیز به شدت همزاد پنداری تو با ذهنت بستگی دارد ذهن مدام میکوشد که لحظه حال را انکار کند و از آن بگریزد به تعبیری دیگر هرچه بیشتر خود را با ذهن خود یکی بپنداری، بیشتر رنج میبری این گونه هم میتوان بیان کرد هرچه بیشتر لحظه ی حال را مقتنم بدانی و آن را بپذیری، از درد و رنج راحت‌تر می‌شوی و نیز رها از ذهن نفسانی. چرا ذهن نمیخواهد لحظه ی حال را بپذیرد؟ زیرا لحظه بیزمان اکنون تهدیدی برای ذهن است. ذهن به گذشته و آینده گره خورده است. اگر از گذشته و آینده بیرون بیفتد میمیرد ذهن و زمان هرگز از هم جدا نمیشوند فرض کن زمین از آدمیان خالی باشد فرض کن فقط گیاهان وجود داشته باشند و حیوانات آیا گذشته و ای باقی میماند در چنین وضعیتی آیا میتوان از گذشته و آینده سخن گفت قطعا دیگر چنین پرسشهایی بیمعنا میشوند ساعت چند است؟ یا امروز چه روزی است؟ البته اگر کسی باشد که چنین پرسشهایی را مطرح کند برای درخت بلوط یا عقاب پرسش از زمان تعجب برانگیز خواهد بود زیرا آنها خواهند گفت خب معلوم است زمان همین حالاست جز لحظه حال مگر زمان دیگری هم هست آری ما به ذهن و زمان نیاز داریم تا معاش و معیشت خود را در این دنیا سامان بدهیم اما گاهی این ذهن و زمان زندگی ما را در دست خود می‌گیرند. در این صورت است که اختلال در زندگی و همچنین درد و رنج و اندوه به وجود می آید ذهن برای آن که مطمئن شود کنترل ما را در دست خود نگه خواهد داشت لحظه حال را مدام با گذشته و آینده می پوشاند و بدین سان شور زندگی و توان بالقوه خلاقیت ما را در زمان مدفوع می کند. توان بالقوه تو برای آفریدن در لحظه حال قرار دارد. ذات حقیقی تو خلاقه است می تواند بی آفریند. زه هجاب ذات آفریننده تو می شود. زمان بار سنگینی است که در ظرف ذهن جمع شده است. بسیاری از آدمها زیر این بار سنگین رنج میبرند. تعجب در این است آدمها مدام بر این بار سنگین میافزایند. آنها لحظه پربهای حال را نادیده میگیرند آن را به وسیله تبدیل می کنند برای رسیدن به هدفی در آینده. هدفی که فقط در ذهن وجود دارد نه در واقعیت. تلمبار کردن زمان در ذهن جمعی و فردی مقدار زیادی از درد و رنج های گذشته را در آدم ها نگه می دارد. اگر دیگر نمی خواهی برای خود و دیگران رنج تولید کنی، اگر نمی خواهی به رنجی که از گذشته تا کنون در خود نگه داشته ای چیزی بیافزایی، بنابر بنابراین دیگر بیش از این زمان نیافرین. یا لا به آن اندازه بیافرین که برای جنبه های عملی زندگی روزانت نیاز داری چگونه میتوان از آفریدن زمان دست کشید این نکته را فراموش نکن که لحظه حال تمامی آن چیزی است که تو در اختیار داری توجه عمده زندگی خود را بر لحظه حال متمرکز کن اگر تا کنون بر گذشته و آینده بیشتر تمرکز داشته ای و گاهی به لحظه حال توجه می ای اکنون به لحظه حال بیشتر توجه کن و گاهی هم برای سامان دادن به امور عملی زندگی روزمره به گذشته و آینده هم نگاهی بینداز به لحظه حال همباره پاسخ مثبت بده اگر چیزی هست دیگر چه ای دارد در برابر این هست مقاومت کنی. مقاومت کردن در برابر زندگی عاقلانه نیست و زندگی چیزی است که در لحظه اکنون و فقط در لحظه اکنون جریان دارد. خود را تسلیم هست کن. به زندگی بگو آری. ناگهان مشاهده خواهی کرد که زندگی برای توست نه بر علیه تو. گاهی لحظه حال غیر قابل پذیرش، ناخوشایند و وحشتناک می شود چه باید کرد زندگی همانی است که هست اما نگاه کن ببین ذهن چگونه بر آن برچسب می زند و چگونه برچسب زدن های ذهن و قضاوت آن موجب رنج و احساس بدبختی می شود با مشاهده نحوه کرده ذهن می توانی به بیرون از الگوهای مقاومتی ذهن قدم بگذاری و به لحظه ی حال مجالی بدهی تا باشد این کار تو را از شرایط بیرونی رها میکند و زمینه احساس آرامشی جرف می شود بنابر نگاه کن ببین چه پیش می آید و اگر لازم و ممکن بود وارد عمل شو ابتدا پذیرا باش آنگاه عمل کن ارمغان لحظه حال را هرچه که هست بپذیر. چنان که گویی تو خود آن را انتخاب کردی. با محتوای لحظه حال کار کن. با آن نجنگ. محتوای لحظه حال را دوست خود کن. نه دشمن خود. این مواجهه با محتوای لحظه حال به طرزی معجز آسا زندگی تو را دگرگون خواهد کرد. درد و رنج گذشته ناپدید شدن درد منتی بدن موقعی که نیروی لحظه حال را نپذیرفتی، هر رنج عاطفی که دچارش میشوی ردی از خود در تو باقی خواهد گذاشت. اثر این رنج عاطفی با رد رنجهای عاطفی گذشته در هم می میزد و در ذهن و بدن تو خانه می کند. این البته شامل رنجهای دوره کودکی تو نیست می شود. رنج که توسط ناآگاهی دنیایی به وجود آمد که تو در آن به دنیا آمدی این درد و رنج تلمبار شده میدان منفی از انرژی ایجاد میکند که ذهن و بدن تو را فرا میگیرد این میدان منفی انرژی هست اما دیده نمیشود اگر میخواهی آن را ببینی به دردمندی عاطفی بدن نگاه کن دردمندی بدن به دو صورت وجود دارد، غیر فعال و فعال. ممکن است در نوت درصد موارد دردمندی بدن غیر فعال یا نهفته باشد. گرچه در یک انسان ناشاد دردمندی بدن به طور صد درصد فعال است. بعضی از آدم ها تقریباً به طور کامل در حالت دردمندی بدن زندگی می کنند. بعضی ها دردمندی بدن را در شرایطی ویژه، احساس می کنند. برای مثال در یک رابطه بسیار نزدیک یا های مرتبط با از دست دادن چیزی در گذشته جدایی از یک عزیز صدمه جسمی یا روحی و غیره هر چیزی می تواند این دردمندی بدن را تحریک کند به ویژه چیزی که با الگوهای دردمندی ما که از گذشته با خود همراه کردیم جور باشد وقتی که دردمندی بدن در شرایط مساعد فعال شدن باشد، حتی یک فکر یا حرفی از جانب کسی می تواند آن را فعال کند. بعضی از دردمندی های بدن زنندند، اما آسیبی به کسی نمی رسانند. برای مثال، شبیه حالت کودکی که از نق و نوق کردن دست بر نمی دارد. بعضی از دردمندی های بدن شرارت آمیز و ویرانگرند. بعضی از آنها به لحاظ فیزیکی خشنند و بعضی به لحاظ عاطفی و احساسی. بعضی ها به افراد پیرامون تو و یا نزدیکی به تو حمله میکنند و بعضی ها به خود تو حمله میکنند، تویی که میزبان آن درد های بدن هستی، در این صورت افکار و احساساتی که نسبت به زندگی خود داری به شدت منفی و خودویرانگر میشوند. بیماریها ها و حادثه های ناگوار معمولا به همین شیوه به وجود می آیند بعضی از دردمندیهای های بدن میزبان خود را به سوی خودکشی سوق می دهند زمانی گمان می کردی که شخصی را خوب می شناسی اما ناگهان برای نخستین بار مواجه شده ای با یک آدم کاملا بیگانه و تنفرانگیز و نمیدانی چه کنی با وجود این بسیار اهمیت دارد که تو این حالت را در خیشتن مشاهده کنی، نه در دیگری. علایم ناخشنودی را در خود مشاهده کن، در هر شکل و صورتی که هستند. این علایم ممکن است بیداری دردمندی بدن در تو باشد. این دردمندی بدن به شکلهای تحریک پذیری، ناشکیبایی، ملالت، میل به آسیب رساندن به کسی، خشم، عصبانیت، افسردگی، میل به رخ دادن یک حادثه غمبار در رابطت با کسی که دوستش می‌داری و غیره. به محزانی که دردمندی بدن از صورت نهفته‌اش بیرون آمد، آن را در این ها ببین و دستگیرش کن. دردمندی بدن دوست دارد بماند، مانند همه چیزهای دیگر در هستی. دردمندی بدن تنها در یک صورت میماند اینکه تو خود را با آن یگانه بپنداری در این صورت است که دردمندی بدن برمیخیزد بر تو فرمان میراند عین تو میشود و با استفاده از تو به حیاتش ادامه میدهد این تویی که به آن غذا میرسانی غذای دردمندی بدن هایی است که آکنده از پژواک صدای خود آنند، هر چیزی که درد و رنج بیشتری میآفریند عصبانیت، ویرانگری، نفرت، اندو نمایشی غمبار در رابطه، خشم و حتی بیماری بنابراین دردمندی بدن وقتی بر تو سلطه پیدا کرده است وضعیتی را در زندگی تو به وجود میآورد، آنگاه در آن وضعیت منعکس می شود و از انعکاس پجواک صدای خود تقضیه می میکند غذای درد و رنج فقط درد و رنج است و بس درد و رنج نمیتواند از شادمانی تغذیه کند حاضمه درد و رنج توان هضم شادمانی را ندارد وقتی دردمندی بدن بر تو چیره میشود تو خواهان درد و رنج بیشتری میشوی تو به یک قربانی و یا یک مقصر یا مجرم تبدیل میشوی خواهان آن میشوی که کسی را دچار رنج کنی و یا خود دچار رنج شوی و یا هر دو در واقع بین این دو حالت تفاوتی وجود ندارد البته تو متوجه این حالت خود نیستی و شدیداً ادعا میکنی که در و رنج را نه برای خود میخواهی و نه برای دیگری اما کمی نزدیک شو و به خود نگاه کن خواهی دید که فکر تو و رفتار تو چنان است که به درد و رنج تداوم میبخشد رنج دادن خود و دیگران اگر واقعا نسبت به این حالت آگاه بودی الگوی دردمندی بدن محو میشد زیرا طلب درد و رنج عاقلان نیست و هیچکس آگاهانه احمق نیست دردمندی بدن که سایه تیره نفس است از روشنایی آگاهی تو میترسد دردمندی بدن از پیدا شدن و دیده شدن میترسد بقای دردمندی بدن به آن بستگی دارد که تو خود را ناآگاهانه با دردمندی بدن یکی بپنداری اگر به طور ناآگاهانه از رویارو رو شدن با درد و رنج خود بترسی باز به بقای دردمندی بدن کمک کرده ای. اما اگر با آن رویارو نشوی اگر روشنی آگاهی خیش را بر درد و رنج خود نتابانی، مجبوری مدام با درد و رنج خود کلنجار بروی. ممکن است دردمندی بدن تو حیولاوار تو را بترساند و نتوانی با نگاهی بیندازی. اما من به تو اطمینان میدهم که در دردمندی بدن تو است که تاب حضور ناب تو را ندارد. بعضی از آموزه‌های های معنوی اصرار دارند بقبولانند که درد و رنج در تحلیل نهایی چیزی جز خیال و وهم نیست البته این نکته حقیقت دارد پرسش این است آیا تو هم حقیقت این نکته را تجربه کرده ای؟ باورداشتن به چیزی به معنای تجربه کردن آن چیز نیست آیا دوست داری تا آخر عمر خیش درد بکشی؟ و مدام بگویی که درد چیزی نیست مگر وهم و خیال آیا این کار تو را از درد و رنج رها میکند بحث ما این است که چگونه این حقیقت را تجربه کنی و آن را ملکه ی وجود خیش سازی بنابراین دردمندی بدن نمیخواهد تو آن را مستقیما ببینی و ماهیت آن را دریابی به محض که مشاهده می میکنی میدان انرژی آن را در درون خیش احساس می کنی و توجه خود را به آن معطوف می کنی رشته یکی انگاری خود با ذهن گسسته می شود و مرتبه برتر آگاهی تو پدیدار می شود. من این مرتبه از آگاهی برتر را حضور مینامم. تو اکنون مشاهده کننده یا تماشاگر دردمندی بدن خیش شده ای. یعنی دردمندی بدن دیگر نمیتواند خود را تو وانمود کند و از تو استفاده کند و در زم نمیتواند به واسطه تو تجدید حیات کند تو به سرچشمه نیروی درون رسیده ای تو به نیروی لحظه ای حال دست یافته ای. وقتی آنقدر آگاه می شویم که بتوانیم یکی انگاری خود را با دردمندی بدن کنار بگذاریم چه بر سر دردمندی بدن ما میآید؟ ناآگاهی دردمندی بدن را میآفرینند؟ آگاهی آن را به خود تبدیل می کند. قدیس پل این اصل کلی را خیلی زیبا بیان کرده است. او میگوید هر آنچه که در معرض پرتو نور قرار میگیرد دیده می شود. هران آنچه که در معرض خود نور قرار میگیرد نور می شود. درست است. تو همانطور که نمیتوانی با تاریکی بجنگی جنگی، با دردمندی بدن هم نمیتوانی بجنگی. اگر این کار را بکنی، نزاعی درونی در تو به وجود می آید و دردمندی بدن تو را چند برابر می کند. تماشای دردمندی بدن بسنده است. تماشای آن، به این معناست که تو آن را به عنوان پاری از آنچه که در لحظه حال هست، پذیرفته ای. وقتی انرژی حیاتی تو به تله میافتد دردمندی بدن تولید می شود. یعنی انرژی حیاتی تو خود را از تمامیت میدان انرژی تو جدا می کند و با استمداد از روند غیرطبیعی یکی انگاری خود بازه، خود مختار می شود بدین سان انرژی حیاتی تو بر علیه تو میشورد و به انرژی ضد حیات تو تبدیل می شود مانند روباه به افتاده ای که می کوشد با دندان دم خود را از بدن خیش جدا کند چرا فکر می کنی که تمدن ما بسیار ویرانگر زندگی شده است حتی نیروهای ضد زندگی نیز نیروهای زندگی هن. وقتی رشته یگانگی خود را با ذهن خیش میگسلی و تماشاگر ذهن خود می شوی دردمندی بدن تا مدتی به فعالیت خود ادامه می دهد و می تو را فریب بدهد تا دوباره خود را با آن همزاد بپنداری اما تو دیگر به واسطه یکی انگاری خیش با آن به آن مدد نمی رسانی بنابراین دردمندی بدن لحظاتی میچرخد و آنگاه از حرکت باز میستد در این مرحله ممکن است در قسمت های مختلف بدن خیش احساس درد کنی اما مطمئن باش این دردها دوامی ندارند به حضور خیش ادامه بده به هوشیاری خیش ادامه بده محافظ بیدار درون خیش باش باید آنقدر حضور داشته باشی که بتوانی دردمندی بدن خیش را مستقیما مشاهده کنی و انرژیش را نیز احساس کنی بدین سان دردمندی بدن دیگر توان آن را ندارد که فکر تو را کنترل کند به محض آنکه فکر تو با میدان انرژی دردمندی بدن همپیمان می شود تو باز با آن یکی می شوی و با فکرهایت آن را تقضیه می کنی برای مثال اگر خشم نوسان انرژی مسلط دردمندی بدن توست و تو فکرهای خشمگینی در سر داری به این فکر می کنی که فلان کس چه بلایی به سر تو آورده و یا تو می خواهی چه بلایی به سر او بیاوری بنابراین تو ناآگاه شده ای و دردمندی بدن عین تو شده است هر جا که خشم هست در لایه های زیرین آن درد و رنج هم هست یا وقتی که هوای دلت ابری می شود و تو به الگوهای منفی ذهن خیش پناه می و زندگی را چیزی وحشتناک می فکر تو با دردمندی بدن تو هم پیمان شده است یعنی تو ناآگاه شده ای و در برابر حمله های دردمندی بدن شکننده شده ای. ناآگاه یعنی یکی شدن با بعضی از الگوهای ذهنی یا عاطفی این به معنای غیبت مشاهدهگر است توجه آگاهانه پایدار بین دردمندی بدن تو و روند فکر تو پل میزند و موجب روند دگرگونی در تو می شود گویی درد به سوختی برای آتش آگاهی تو تبدیل می شود و آتش آگاهی تو را شعلورتر و فروزانتر میکند این همان هنر کیمیاگری است هنر تبدیل مص به طلا هنر تبدیل درد و رنج به آگاهی بدین سان شکاف درون تو شفا مییابد و تو بار دیگر تمامیت خویش را باز مییابی مسئولیت تو از این به بعد آن است که درد و رنج بیشتر تولید نکنی اجازه بده این روند را برایت خلاصه کنم توجه خود را بر روی احساس درون خود متمرکز کن بدان که آن احساس دردمندی بدن توست بپذیر که چون این احساسی در تو وجود دارد درباره این احساس فکر نکن اجازه نده احساس به فکر تبدیل شود قضاوت و تحلیل هم نکن از این احساس برای خود هویتی درست نکن به حضور خیش ادامه بده و همچنان شاهد چیزی باش که در درون تو رخ می دهد. نه تنها نسبت به درد عاطفی خیش آگاه باش بلکه نسبت به کسی که مشاهده می کند نیز آگاه باش مشاهدگر خاموش باش این است نیروی لحظه حال نیروی حضور آگاهانه خود تو انگاه تماشا کن که چه رخ می دهد. برای بسیاری از زنان دردمندی بدن درست در زمان عادت ماهانهشان بیدار می شود در باره این موضوع نیز بعدا صحبت خواهم کرد فعلا باید بگویم که اگر بتوانی در لحظه حال حشیار و حاضر باشی احساس درون خیش را مشاهده کنی و تحت سلطه آن در نیایی فرصتی مییابی برای تمرین بزرگ معنوی تمرینی که همه درد و رنج های گذشته تو را استحاله میبخشد